سلام، حالتان چطور است؟ سلام، حالتان چطور است؟ خوبم، خیلی خوش آمدید چه خانه زیبایی؟ اینجا یک باغ قدیمی است این خانه قدیمی دکتر حسابی است که امروز به صورت موزه درآمده و می توانیم همه جای آن را ببینیم دکتر حسابی؟ دانشمند بزرگی بوده است. دوست دارم درباره ایشان بیشتر بدانم. ایشان پدر علم فیزیک ایران است. اما من شنیدم که ایشان در چند رشته دانشگاهی تحصیل کرده است. بله، پدر من در رشته های ریاضیات، ستار شناسی، پزشکی، بیولوژی و فیزیک، تحصیل کرده است باور کردنی نیست دکتر حسابی یک نابغه بوده است بله او در سازمان انرژی اتمی ایران نیز فعالیت داشته است پس همه ایرانی ها به دکتر حسابی افتخار می کنند. بله همه پدرم را دوست دارند او در سال 1990 به عنوان مرد اول علمی جهان معرفی شد. به راستی ایران سرزمین دانشمندان بزرگ است.